حرا بن الله و الله علیه و آله الله در خبر در باب کتابت الحدیث بود هست شد که ایشون رو که چند تا و توضیح داده شد که بحث کتابت الحدیث یک بحث قدیمی بوده و شبازد و کتابت الحدیث بیش از این مقداریست که ایشون نقل فرمیدن شواهد خیلی بیشه داره و هست کرده این اصولا امیر رو مهمونی صلی اللہ علیه و اصحاب علی ایشان و, و اولاد ایشان پرزرزر دینی پرزرزر اسلامی داری خطی بودن که کارشون همین تأکیلشون روی مسئله کتابت الحدیث بودن. و هر سر خیلی بیش از این مغزارید که مزمومات بوجه دید در اینجا عبردن توضیحش سابقاً عرض کردیم ما روایات فراوانی داریم که خود احمیر المرنی سامالله علیه اون رساله جامعه رو راجعون کامل در زمان خیام بر اثر به بود که تمام احکام درش بود و این شواهد در روایات ما خیلی زیاده، تو روایات عامه هم هست. حالا با کم و که شده اما هر در روایات عامه اون‌ها غالبا سرکردن این کتاب علی رو یا صحیفه رو یک چیز خیلی کوچیکی در اندازه این اصلاً بالاتر که در قلاف, قلاف شمکیر حضرت بوده این تو بخاری هم هست این بخاری هم کتاب علی رو یکی جوی نمی کرد توضیح ها توی ساروان از در روایات ما حالا در برزش داره که هفتان زراق بوده و پوس بوده از اینسه پوس بوده مختلف روایات داریم تا بیر مختلف و این شرکه تویدانی میخواد کرده آن چاشی نیست و تو بعض از روایات داره که امیر رو موردین این رساله رو این جامعه رو از رسول الله مستقیم در اون دو باید تأبیرش اینه خیلی هم تأبیر زیباییه نسانتون کتر برکتر بخون من فلق فی فلق مثل فلق فا و نام ها به معنای شکافه فی هم همون دهانه که در حال مجید روز از ماه سته هست فا, فا و فا و فی یعنی از دلب رسول الله فلق فی خیلی تعبیر شریبی که کاتب ابو علی علیه السلام من فلق فی یعنی از دلب مبارک حضرت این مطلب را نوشت اکثر این چون بحث خاص خودشو او اصولاً در کتب جرایح حدیث در ایجاد کسانی که تاکید بر کتابت حدیث داشتن نام امیرالمؤمنه است که صحابه رو به دو دسته تقسیم می‌کردن دسته ای که می گفتن به نویسیم احای دسته ای که می گفتن ننویسیم. نام امیر المونی جزوی کسانی ارز کنجیب حتی علیان و الحسن دارند. به نظرم کتاب که بایه خفیه ورداد که از هزار سال تر دار تعلیم کتاب نام علیان و الحسن که ظاهراً فرزن اونگاه شما حاصل مشتبه باشه که دیروزم توضیح هر از کار. در کتاب مصنف ابن عبی شیبه نه هم می‌کنن از اون مساله نتیم ولی این حدیث ما نداریم. از اصول ما از زن‌های به بی‌معنی کاملاً دسته. که میگه روزی که فیلامبر در منزل من بودن، علیه دلیل دارم. یه پوستی هم روشن بودن، همین گوشتی فیلامبر صحبت کردن صار میکرد و می‌نوه. اون پوست پر کرد. تمام اون پوست رو برای از کلمات فیلامبره. از این مطلب در روایات آمها هم هست، در روایات ما هم هست. شواهد فراغانی داره بخیر موازی این شواهد و روزی کاریش بشین خیلی طولی بکشین و درست اصل این مطلب درسته یعنی این که ایشون خب که علم احتمام داشتن به کتابات الحدیث این مطلب صحیحیه اینجای بحثش نید درست هم هست موارد دیگه هم هست در اصحاب علم دیشون نه بودن در وقت صلات رباره بیدید که از امام صادق زراره سآل میکنه وقتیه ایه که امام شروع فنبه جواب ف... ف... و خرج در علواح خود زراره به اصلاح لقه داشت به اصلاح اونزما فرقی او راهش در که مشکوله نوشتم بشه از از نه حالا اون پیشتر بیداده در از این که روازی دیگه هم داریم، غیر این دبایی هست که اصحاب می نوشتن و این من علیه مسلام روی اینجا حتی نوشتادمون ها خیلی تأکید داشتن لیکن از خیلی مشکل کار در اینجا این است که اولا خیلی از این کتاب هایی که اولا بعض از این روادی که ایشون اینجا آورده معلوم نیست ماهید حدیث باشه علمه ورقه تو علمه من بعدش هم این کتاب هایی که صحبت شده این نامه ها خود کتاب هرگر این کتاب امیرون اون این که معروف در احضرت اختیار که از اختیار عام مردم نبود در اختیار احضرت بوده هم کنم در قرم دوم در, در, در, در مدینه زیدی ها میگوزن کتاب و علیه عیمه ما میگوزن کتاب و علیه خوب دقیقه بکنیم کتاب و که زیدی ها میگوزن کتاب و فضایی و سنن و احکام بود که اونها به امیرون مهمید صورت در موتون دیگر به بچه های عبو رافع نسبت داده شده. یا به خود عبو رافع. یا به خارس همدانی. مجاشی یک توضیحی در اول کتاب داده. پیش ما پیش شیعه، این کتاب و علیه نبوده. جمع آوری دیگر آنونده. این رو زیدی ها به اسطوره حساب میکنه. احلوش یک کتاب و علیه میگفته. اون در اختیارشون بود. عمومی نبود. این یکی عمومی بود اون معیار امامت بود از کردن اون را امه علیه و سلام دلیلیم برای ما امام هستیم و این مثلا کسانی که در زیریه ادعال میکنن اینا امام دیدن اون دست ما نرسیده این نام کتابهای دیگری هم کردن مثلا ما راجع به زلاغه رواید داریم که الواحی داشت حدیث امام ساده رو بشن اما در مسادر ما هیچ جای نهداره که کسی چون زراره شاگردهای مت... متعدری داشته یکی بچه ها چه برده یکی ایچ بسهن پسر بردرش که موکره یکی جمیله یکی ایچه فرسنه عمر نوزه نهزه ادهی از شاگردهای معروفی داره که آثار ایشون نهد کردن یکی حریضه هیچ کدوم از این ها نگفتن این رو از علواه زرار لرگو میکنی در غز میکنی در خودشون نوشتن اما در مقام بیان از لوه رو به اینها ندادن اون نامه اون برقه اون از پوست اون رو ندادن لذا الان نمیتونیم از این ما خیلی نتیجه بگیریم از این وضع موجود خیلی نتیجه بگیریم مضاقه به این که اینها به هر حال ملیارهای خاص خودشی داره یعنی معیار و عمومی که اسمش رو بگیده اون حجیت تعبدی خبر توی اینها نیامده نزداده میتونیم الان به این روایات برای حجیت تعبدی تمثل بکن بله این روایت اجمالا نشون میده که وقت حدیث بین از زمان رسا صحابه بعدها زحابه عقیمه این مطرح بوده. این درسته این مطرح درسته ام در که به خون میشه مهیار و قلعه تحبول در اجمالاً چرا؟ حدیث شماره 86 و شیش مرهوم از محمد ابن یحیاب استادیشان از محمد بن حسین بن حرف خطاق که بسیار بزرگواره از محمد بن اسماعیل بن وزی دیگر چون اینو که بارده بحثه بهشانی بشین حقا در حق مقضاره اختستاری اینجا هر بزنید جیغن به ابن ا صالح مورد خیلی شناسایی درستی نشد و شاید مثلا با یه قراره نیمشه توصیه شرم مثلا این یزیده بن عبدالمره احتمالاً این پدر نوخلی باشه نوخلی معروف برحال توصیحی فیلن نداره لیکن احتمال داره پدر او باشه چون یزیده بن عبدالمره که نوخلی هم اسم موزن اون حسین بن احتمال داره برحال خود نوفلی معروف از احاد روشه این حضرت چه بسه کده انا عبی عبدالله علیه السلام قال تضا برو فه اینه فی زیارت کن احیاء لغلوب کن و ذکرن لعحادیثنا یاد عحادیث ما و عحادیثنا تحت کن و بعد کنه علا بعد فه اینه اخذتون به ها غشدتون بیا روشدتون و نجوتون و انترکتون نجوت و, و ها ظللتون و حلکتون و خود به ها به احادیث ما رعنه به نجات کن زعیم این هم نرکرم برای خبر یک قبضییت یک طایفه از روایات به اینکه که در مجالستون که هم ملاقات میکنی یا در احادیث ما با یک طایفه این یکیشه که زیاد ایلن بکنید ادیان در بکنم و ذکرن در احادیث ما. و من جوابی نیشی بودم بعد دریش معلوم نیست حدیث در اینجا مراد همین معنای مصطلح باشه مثلا بگید امام ساله داره چی این مقاماتی سریمه چی این مقامات, ای این مقامات رو زده معلوم این حدیث مصطلح اندیس همه تو مثلا ابا عبدالله یکور مزم من تعالی کدام مراد این باشه احادیث سنا یعنی یاد مراجع ما. ما صحبت بکنیم صحبت کتون راجبه خب ممکنه انسان حدیث زمان از امام نقل نکنه دیگه از مدینه مرزون می آمدن مرزون توجه داشن مثل این نفر دیدیم بیریم اینقدر مثل احلبه ایت داره یا خود احلبه داره راه هم از این سنا احمد این معنایش که ایشون محل شد اینم راجعه این قسم حالا یکی دوتا حدیثم به این, این مزم محمد ابن یخیاخ استاد کلینی محمد ابن اثر قومی در مشایخ بزرگوار انه احمد بن محمد بشونه اشعری قومی است که بسیار بزرگواره عبد عبدالله بن محمد الحجال حجاج در روحات عرب به معنای کفت شاید کفت میفروخت از این حیواناتون حجال نیموارده چیکاره بگه کرد که کفت انه عبدالله محمد الحجال مرد سقه و بزرگواریه مرد حجال. احتمال داره که جزء آثاری باشه که مرحوم اشعری از کوفه به قم فرستاده که مثلا ان بعض از اصحاب اله او بعضش ارسال داره. باکن از چون چون امسال محمد اشعری که فوق العاده دقیقا عبور شاید مثلا قریمه بر قبولش بشه. رفعو قال قال رسول الله صلی الله علیه و علیه از کلم رفعهو در این دوزه ممکن است بگه این رفعهو رسول الله اینجا تقریبا شبیه ارساله اما رفعو در کلمات آمه معنی مرسل نیستش تضار کرو و تلاق رو و تحدسو فه این الحدیث جلاق القلوب این القلوب لترین رین یعنی زنگ میزنه قلوب مثل که شمشیر زنگ میزنه رین زنگ میزنه شمش قلوب هم زنگ امام یعین النسوی و جلاءه الحدیث اگر میخواهید زنگار ذرو پاک کنید با هم صحبت می‌کنید راجع به دین این هم کلاوی حدیث توش اومده اما معلوم نیست حدیث مسترد ما یعنی بشین با هم راجع به دین عقاید دینی ایمان ها گفتمان باهاله شما با هم گفتمان دینی داشته باشین این گفتمان دینی شما رو قرمات اصلا میکنه گرفتاری ها رو بردارت میکنه قرمه ها رو خوشحان راسته مطلب درود این اصابه اما یه رفتی به حدیث مصطلح ما نداره از آلم ها خارجه حدیث شماله هشتاده مرحوم کلینی از محمد نیحیان استاده ایشان ان احمد ابن محمد که بازه مراد اشعریه ان ابن فضال از خدم ابن فضال در اطلاق در تطاب کلینی مراد پدره این طور کلی در ذهن تو شرارم گفته بود که حالا که ارتکاط برای شما پیدا بیشه ابن فضلا در کتاب تحضیح و استفسار این در افلاح پسر این دو تو با هم بیگه افلاحاش بین کلی و بین مرموم شکلی این فرد هست اما احمد ابن محمد اما ابن فضلا از کرا سر سوش هم اینه که محلوم احمد عشق علیب و کوفه آمدن مقدار زیادی از های علمی کوفه به قوم اومدن. که اینجا هم کله این از ایشان گیرده بیاید واسه از ایشان و پس هر یکی از اون می آسا چون شوابط خیلی دیاده از هر یکی از اون می آسا کتاب ابن فضال یعنی الان ما به ترین راهی که به کتاب ابن فضال که درداریم همینه بهترین راه چون من گفتم که این کتاب ها به ما نرسیدم کتاب ابن فضال اون چرا در اینجابش دادن حضور به ما رو یکی از بهترین راه ها برای رسول به کتاب ابن فضل همین راهه کلیه. هست این ابن موسکان که مرد بود سیاه بزرگوانیز این که به استاخلان محضرت بوده محضرت محمد العزیز بعد میرسه بشمانه علی جفر علیه السلام قاروازی اتخلوم اتخلوم خلوت میکنیم و تو و تبونون ما شعرون قلتو ای وضا انا را نخلو خلوت میکنیم و نتحدث و نبودم ما شئنا اون کلام امام، فقاد امام و الله لب دست او، امی معکم، فی بعضی از هر مواردی، اما غلا امی لوحید و ریحکم و عروهکم، و ام نکم، این نبکنیم جواب دادم، و ام نکم علی دین الله و دین ملادی کته، فاعیم و به وعیم انسان هم خیلی خوشمدنه. حدیث حدیث روشن باشه. تاریش روشن باشه. مدنش روشن بله این مطلب درسته. از که اینه از اقادیس هم که مؤمنی و حقیق با آده ایشون با افتمال باشه. راسته اما این وقتی مدنه توی این حدیث مصطلع باشه. باز از حدیث دیگه اونی که مرگوم کلیمی از محمد بن یهیو استاد ایشان از احمد بن محمد ابن ایسا این اشعریتان احمد بن محمد بن عبدالله الان نمیشه سرمشون هن رجلن انجمیل عدیث اهل شکل داره قال سمه تویه بود از مؤمنون خدمان به بعض مؤمنین بعضشون خدام بعضی هم از تو کیف یکونون خدمان بعض هم به بعض یافیید و بعض ها بعد یا یعنی فیلم مع این سالا از خصوص یعنی خصوص حدیث باشه، ممکن است علم باشه ممکن است خدمت مالی باشه یا خدمت اجتماعی باشه مثلا یه بهجااعت اجتماعی داره به کسی کمک میکنه این روشن نیست. این هم یکی از این احادیست. یکی یکیلی از اوغا که این مفرد و از هر صابق بر توضیات کافی کردن، ظاهرن به احتمال بسیار قدید دارد برگرده به همون حساب صحابه و حساب قیقمبر و, و و اون تحکیل بر اسناد کلام تحکیل بر این بر. که شما وقتی مطلقی رو می شونید پس این در روزانه زیدید می کنید در روزانه از وادیوشنیدیدید کنید در روزانه. کسی بر شما گفته این تحکیل بر مطلب این منشع شد که بعدها همین علم حدیث درست بشه چند لبین ببین عبارات از نماز سنت در کتب حدیث اهل سنت هست من ماخصا الله تعالی خاد ال امه به اسناد من ماخصا الله تعالی خاد ال اسناد یکی از خسارات امه به نظر شما اسناد راسته اگه آشنایی با میراث مسیحی یهودی غیر داشته باشید سند نداره های فلسفی مثلا آثار ارسطو و افلاطون یه نسخه مثلا سال 20 میلادی 100 میلادی هیچ سندی که قره و علا فلان فلان علا قره مثلا نسخه این خیلی عجیبه اینکه از امتیازات این شریعت مقدسه به اینکه از اسباب خاتمیت این شریعت مقدسه این منشاء شده که تقریبا الان ما به راحتی می توانیم هر حدیثی که در مصادر سنی یا مصادر شیعه باشه خیلی راحت پیگیری بکنیم این رو سکونی از امیر المؤمنی با خودش نهم میکنه مرگوم کلینی نعوضه علی ابن ابراهیمن عبید این یک سنن و احمد ابن محمد ابن خالد ظاهرن و انحت احمد ابن محمد و از طلیق برقی برقی قسر خن نوفلی از که نوفلی حسیم یزی توصیر چند دایی نداره این دایی کرده. توصیر کردن و مثلا آرخوی به کامل زیاده و شفته داره. و توضیحاتش رو من صابقا مفسر دارم یا حال تکرار ندارم فقط یک نکته. احسای بکنم که نوفلی اول عملش کوفه بوده اواخر زندگیش میاد ساکن ری میشه احتمالا برای نشونکتر به احتمالا و ابراجون هاشم علیه ابن ابراجون به احتمال قرمین به احتمال بسیار بسیار قرمین ایشون شاید کتاب سکونی رو در کوفه نو نوفلی همین سکونی یک در کوفه سکونی تو دیارش مخصول عرض کردی اما بردی پسر احتمالا وقتی که ایشون رای آمده شون پسر مال قومه در ساکن قوم بوده احتمالا میتونه که به رای آمده در زی که تهران ایامی که ایشان به تهران آمده مرهوم احمد بردی از ایشان کتاب رو گرسه. الان این من ابی عبدالله علیه السلام قال قال عبدالله محمدی این من شراراً عرض کردم یه اختصال شده شون مشهور بوده اصل سند کتاب سکونی اینجوری بوده ان ابی عبدالله ان ابیه ان آبایی قال، قال،, قال قال رسول الله یا ان علی قال این اصل کتاب سکونی چند بار عرض کردن پس اینجور اصانی درام توش هند دفتر قال امیر المؤمنين عليه السلام ازا خدستم به حدیثه فعصم دور الاللی حدسکم فعمکان حقا فدکم و امکان کربن یا کذربن فعليه هم تر از که این ما چون راست سکنی قبول نداریم اما معلوم میشه اجمالا چون دردها این کار را افتاد بین مسرونا، سرون ها عملا اصناد این اسناد دیگه را افتاده با اینکه این جالب واقعا که چیز عجیبیه این، روزی مزید بتوانیم این مطلب حساب پیش شما. با یک دقت و وسواسی از قرن مثلا دوم اول در قرن دوم، اول در قرن دوم، شروع که تمام مثاله و مصنوع بود. حتی لغت، مثلاً این سبب، مثلاً دستمی بولم، بولم باز سمنه اهل عرب یا بولی که حتی لغت رو هم سعی کردم با اصله. تمام مثاله تا... و یه وقتی هم اخیرا اشاره این کردم که یک روایتی از پیغنبه مرشد حج سنن بنی اسرائیل ولا حرج احتمال داره مرادون حدیث هم همین باشه چون بنی اسرائیل یک وضعیتی داشتن که سند در اونها وجود نداره که ما پیامن هم بفرمون بنی اسرائیل چون درست و مصنف از نرسیده هر چی گفتن بگیم چون اونا من همگی گفت اینجا مرکز زمینه وسط زمینی روز که برد برد تر چون شما را چه بو اونا راه معرفت نداری بسته راه بسته است قید عجیبه از روی اجازات پیانبر که بنی اسرائیل شما به بنی اسرائیل راه نداریم اما در اینجا از من رو یه موقع نهار با, با صحب نصفت داریم یعنی در این شریعت مقدسه نمی که از اصلاح خاتمیت ها شریعت بوسا و دارای این خصوصه نبودن که دارای قدرت علمی باشن برای اثبات اما این شریعت مقدس دارای قدرت علمی برای اثبات این خیلی نکته ایمونی میشه اثباتشه الان شما لغت رو مثلا فرصه این کلان چیز نوشته راحت میشهیم بفهمید که این قبلیشی کی نوشته اون تصاصل تاریخی پیدا بکنیم مطالب رو پیدا بکنه. و رضا بزرگانه حدیثی که در قبل مثلا چار و پنجم بودن یکی از امتیازات مهمین ها کاری هزار حدیث رو بررسی کرده بودن صدها هزار خیلی مهمین. در صبر نکنیم لبزون واقعا ما وقتی اینها رو میخونیم قبطه نکنیم با حالینا. خود همین احمد, احمد, احمد یعنی یک میلیون و هفتصد هزار حدیث نشتور که این مصنف حضور هزاره از اون تخییز کرده از یک واقعا یک حذت عشوه صنی صخات های عادیی نه ۱ تا 2006 م بر میشه افت از تا 2000 تا بعد استاد میشان نقل کرده و حال این واقعا ازم وقتی نگاه میکنه از جوواور واقعا چون اینا فقط اتفاع نکردم آن در همین کتاب هست تا اتفاع به حاض رسولان مثل مایور و اه نهعباس. می‌گرا فلان ابن علان ابن عباس، وادر اسلام داریم. روا فلان ابن فلان ابن عباس، وادر اسلام مثلا صرف سریو. باز همون مال صحابه، مال تابعین، مال شاوری، مثلا حرمه فلان شاگرد ابو حنیفه نبوده، ولی این سند روشن نیست. را یعنی دیگه از بحث رسول الله که به صحابه و تابعین و فقها اینا رو هم بررسی می‌کنه که سند درستی یا سند درست نیست. خیلی زحمتی شده, شده حداقی وقا چه ما شهرت سنت این علماای گذشته زن احتمال بدین اینا ریشه هاش برگرده به رسول الله و اهل بیت و ریشه این ماجرا که شما اسناد بدین هر رو بی حساب در نکنید این مثلا اینجا حدیث الان به این مضمون اینجا منحصر بهینه به این مضمون اضافه تدسون به حدیثه البته این سنده ارز کنم کردن آیت بودی این سنده قبول دارن ما قبول ندارم سنده سکونی رو به هر حال این محل اختلاف بین اولام مشکورم رو قبول نکنم فا از مشکور یعنی بعد از ببینید کتاب سکونی من چند بار توزیح دارم یک نمای تاریخی من یک نمای تاریخی از برای این کتاب وقتی که سکونی نعقی کرد این کتاب شهرتی پیدا نکرد فقط نوفلی تر یکی داره بعد از نوفلی هم شعرت زیادی پیدا نکرد مثلا فرص که اینجا برگیه قسر یا ابراهیم و هاشم موظمش ابراهیم هاشم بعد از ابراهیم و هاشم شعرت بدا کن در قم به خصوص این کتاب در قوم تیمید رو آمد بده بعد از ابراهیم و هاشم پس یکی دو باست کتاب ضعیفه بعد شعرت پیدا کن کلیمین، صدوق و شیط تیوزی بزرگان زیاد مهد نقل اثر قونیو شروع شد تا بعد مخفصات مرحوم ابی عیدی که مدینه ریزه در دانششون تا قواعدی که علامه گذاشتن برای تصحیح حدیث این حدیث خارج شده هستند از بعد از علامه که قرن هشومه یواشاستی که اینا که استاد تو بحث وسرم قواعد تذیه کردن خب دقت کن تذیه با شد؟ یعنی در کی کتاب نقل شد در چند طاری قبول شد پیو بعد 4 سال بعد از اون دو مرتبه تا زمان حلامه از قرن چون افراد فوقهای ما قالدن به سند افتادن اون وقت این بنا شد که چون مثلا نوفری هم توسیق نداشت سکونی دیگاه میردن میخواستن برد اما نوفری نداشت این حدیث ضعیف بود تا مثلا فرسان زمانهای قرن دوازده هم از قرن دوازدان به بعد در علمای شیعه یه و یک تکانی به خودشون دادن. این تکان به این معنا بود که در توصیق و تسخیم دیگه به گذشتگان اکتفا نکردن. و این انصافت باز می شودن. هم در قرن دوازدان علمای ما شد الانم باید بشه. خود دهت بوده. من کراه نهارز کردم مسادر ما در رجال و قمده حدیث فوق الاز کمه. فوق الاز کمه. پس شما در رجال شیخو طرسش شیخ اینو گفتید من ایشو در رجال کشیدم حالا رجال من قضیه من این مثلا شاید 20 درصد روایات ما به جواب بده حالا قبول بکنید مشترک هم قبول بکنید لذا بحث اینو هم تقریباً 5 تا 6 تا 5 تا تجریده در کتاب علامه و ابن داود. کتاب علامه کتاب کوچیکی در رجال قطعاً جوابوی روایات اهل بیت تا بعد از علام هم چالتن همون همینجا یاد کنم از خلاص و نجاشی و همین به هم بهم به همین از قرن دوازان تقریبا نیواشوش یک شیعه با خودش داره ها. یه راه های جبیدی رو پیدا کرد در توصیق و این کار باید می شد این صفحه یک ای کارش دوترم می شد مثلا آقای خوی کاموزگار. کاموزگار در کتا با مرحوم حاجی نوری هم هست خیلی از این در کلمات ا وحید بهبانی یک مقدار زیادی سرکرام تا حاجی میده حاجی خیلی یک حوض خیلی بکر و بزرگی رو خیلی حوض بردن و توضیح کردن یه مقدار دیگه هم قرار تم راه های ورد خوب دفت و این کار باید ادامه پیدا کنم الان به شما حضرت باید ما توی مرحله هستیم چون این نیاز روایات ماست انصافا ما این نیاز رو داریم این احتیاج رو داریم اتفایی به کلمات گذشتگان در وجه رای اوفیم بکنیم برای معرفت ارزیابی عرضیابی احادث شیعه خیلی کم خیلی کم انصاف هم خیلی کم باید توسعه داده بشه لذا از دوازدهم دوازان تحریباید به بعد که این توصیه آمد یه ازده یه روات سکونی رو قبول کردن بلالا بعد از این که علامه استلاح رو عورد غالبا روات سکونی رو رفت میکردن حالا یا به خاطر الان این حدیث حدیث قشنگی حالا سکنیدون همونده باشید انصافاً بسیار حدیث است که ایراد قشنگی واقعیت در جامعه اسلامی داره این حدیثی که از واقعیتها نماخست الله تعالی بیده حاضر امه الاسناد این خیلی مهمه انصافاً اینه به چشم کم نگاه نکنید ما الانی که از راه که می‌بینیم، از زیابی دقیقی از میرادهای اسلامی حالاً به نتیجه مصبت برسید یا لاعقل مثلا بگیم آه این واضح نشد اینجاش ابهام پیدا کن و در همه رشته ها اینه مثلا من الان معتقدم در زمان ما خیلی مناسب این دراحت هایی که ادعا شده برای قرآن این ها همه رشیابی بکنم ببین از کجاش شروع شده سرالاش کجاست تا معلوم بشه شکریه از این که غره فلان غره فلان اساس بسن نزده همه چ این اگه این کار بشه و یه شیابی بشه اون محدود میشه که مشکلات ما چقدر زیاد بتم. حدیث شماره 91 مرموم کولینی هنه و هنه ابی هنه هن ابن ابراهیم هنه ابن ابی عمر هن منصول ابن بعد نیسال وقاقفی ابن ابراهیم هنه ابی وسیر قال قلطل عبی عبدالله علیه السلام قول الله عزیز جل و هنه این ایستان اون قلط یا طبعون احسنت ولی بسی این ابتلاعا انسان خ بسید زاهرم تحبیل نداشه امان فرق یک تبیونه احسنه هور رجل یس مول حدیث فیوحد دسو به کما سمه لا یزید و فید ولا ینخسومن این هم خیلی با ارزش این حرزش پر این حسنه. به زمان پیغمبر که خوندیم این حدیثشه پیغمبر من هر حدیثی رکنیش همونطور که هست بگید توش دخل و تصرف نکنید ظاهرا این یه معنای دیگه برای کلمه یتبعون یا حاضر شدم یتبعون کنده شده ظاهرن مراده ما از کلمه این میگه شما صحبت رو کشینه همونطور کشیندی نه رو چرا؟ چون ممکنه است کنگه من فکر میکنم که مطلب اینجور فکر من درست نباشه شما از خورتون اشار نکنید فکر میکنم میگذاریم چرا؟ همونطور کشیندی نه رو میکنید ممکن شما به عمر بن عبد اون شخصی که ارزش نرم می‌بینی مثلا در اطار شماست لای ازید وتی و لایان حسنه من فکر می‌کنم این معنا را از کلمه یتربون احسنن اما اعتبار اصلا فقط به این نیست که انسان پیگیری بکنه و انجام بده حدیث یعنی صحبت خوب رو اینجا ما صحبت خوب یتربون یعنی دنبال احسن الحدیث باشه دنبال احسن رو حدیث احسن رو حدیث یعنی حدیث رو به همون صورت واقعی کشینده بدون زیاده و نقیصه محلق کنه خوب گرد کرد ابطلاعاً حالت تعبیلیست اما انصافاً هم معنی چود به ذهن میبینیم معنی آن معنی لطیفیه شبیه همون حدیث سکونی همون است هیچ کم رو زیاد نکده این یک سند بود یک ثنا دیگر در اختصاص شیخ موقیل که از بدم این اختصاص ثبوتش برای شیخ موقیل ثابت نیست اما چند جای این اختصاص هستی وقتی که من از بدم یک نفری است که در بعضی از اسمش هست احتمالاً صاحب کتاب این شخص باشه اینجا هم اونجا هم جایی که جهاینه حزنه جعفر بن الحسین المؤمن این جعفر ابنه حسین المومن در روزی ها نجاشن اسمش هست ایشون اهل بوده کتابی داشته ظاهرن همین کتابه حالا یعنی نارشان شهر مفید توش دهتا تصرف کرده ظاهرا این معلف اصلی کتاب باشه نوادر اگه این کتاب کلی جورد کتاب نجاتی جورتون باشه تو این کامپیترها به نظر اسم کتابش نوادر جعفر ابنه حسین المومن این در اختصار چند بار اسمش آمده همه جا اسمش نه بعید نیست کتاب مالی ایشان باشه عوضه در بغداد و پهش کرده کتاب بود. ان محمد ابن الحسین حسن ابن احمد این مراد ابن الولیده ان محمد ابن حسن سفار که از بزرگان این روی بزرگان قومن هم شد ان احمد الاشعری که بسیار بزرگ بار ان حسین ابن سعید که بسیار جلو. ان صفانه میعیان که خوب غلاده است انه اصحاقه من امار که مرد بسیار مزرگواری انه امی بسیر این سمل هم صحیحه خصوصا اگر واقعا کتاب مال جعفر ابن حسین باش فی قول الله فبشه عباد الدین یکتا به اون غلف فی اسمه اون غلف یکتا به احسن البته اینجا، جا این جا در اون نسخه مرحوم کلینی به همین مقدار اکتفا کرده و اون نسخه خوب بود من فرض میکنه که احتمال بده شاید تو اون نسخه شون ابن عربی اومد بوده از اون نسخه یه چیزی حذف شده باشه یا اینکه از مرحوم رو احتمال بده که روش حذف باشه توضیحاتش سابقا گذشت در این که این بعد اخصاص هم بر مثال اختصاصو میگم اجمالا میشه قبول کرد کلینی هم از دیگه در اینجا داریم همول مسلمون در حال محمد این, این خیلی ندید اداثم اول حدیث اداثم کما سمع او لا دور ولا یمقصور اینجا اون فرم مراد عذیب تبقونه افزان حدیث کسانی که, که حدیث مال میشونی کلام ما ما محضر بیرونیم همون رو نه بکنیم زیاد نکنه نگه امام صادقی اینجور فرمون این مطلب در حساب قوال درست در نمیاد. حدیثی که پیغمبر <تصفيق> <تصفيق> این کار نداشت که بین ارگاه ها میدید چیزه این بهتر این مثل تا مثل که معنون کلینی اولا آورده بود تقرد بود. متن دومی کلینی آورده در جای دیگری نزدیک اون نیست. احمد ابن مهران من که بارم ارز کردیم. چند تا استاد مرحوم کلینی دارم که نمیشناسی بگیش احمد ابن مهران تاستان اینجور اگه مولان داره برمیم گفت بهشون طرف هم مکنیم همه عبدالعظیم حسنی چون مرحوم عبدالعظیم حسنی در حال تکتوم و سرگیز زندگی مخیانه داشته بلی این نیست احمد ابن مهران هم مخفیانه خدمت ایشان میرسیده بفرک کردیم اصل就是 چهره‌ای معروفی باشه، لكن خود می‌خواد در بین حسنی شناخته نشه ایشون خودش رو ایزاً نشناخته بگذشه. به هر حال من سابقا تواعد هندسی اینها را انجام دادم. ما هم کلنیو عادتاً به دو واسطه از عبدالعظیم حسینی ارجاکنند. عادتاً یهو دیگر مثلا از مشایخ از بقیع تصدر از عبدالعظیم حسینی. صلوات الله. لكن از احمد بن مهران نرم کنه به واسطه. اصطلاحاً میان قلوب اسمات قلوب مردین واسه کم میشون احمد ابن مهران نمیشنسیم ایشون رو لکن احتمالاً شخصیتی بوده شباید محمد هم بوده که میتوانسته احادی سردالعظیم حسن این رو برای کلی نردیم ان علیه اثبات ان علیه اثبات اعوده کمی خالی از مشکل نیستن ان الحکمم نعیمم ان عبیب وسیر قال سالت عبا عبدالله قول الله عز وجل الذین استمعونه القول فه اتبعونه احسنه الى آخر الآیه این الى آخر الآیه شاید چون اولایک الازین هدالله و اولایکم هم اولول البا اینها آقل واقعی من احتمال میرم امام شاد ناظر به این آیه دیگه در این نصخه داره الى آخر الآیه بهتر بکنیم انسان آقل واقعی کیه قلول الباق واقعی کیه امام فرمه اون الباق واقعی اینی که در مقابل احادث ما تسلیم باشه اون هیچ ممگیم همونو نرم کنه اشترحال خودش رو داخل نکنه این که در این آخر من تعمل میشدم به ذهنم آمد شاد نظر امام غیر از حقیقت طبعه اون احسنه نازر اون قلول الباق باشه که در رزیده قلوله که رزیده الله، و اولایه که هم قول احضار انسان آقل و خیلت که بعد فسیم الهده بید حدیث اونها را همجور کشینه نعروبه اشتها خودش رو این هم هم المسلمون الال محمد صلی الله علیه وآله هلذین الاسم الال حدیث لم یزی رو فی و لم ین قسومه جا و کما او این سه تا حدیث که هستش هم مال عبو اینا رو یکی طاقه ایشاره پرداده که کمون زیاد نکن و درست همه است حدیث شباله نوز و چهار این در کتاب کافی در اصول کافی محمد بن یحیو استادیشان ان محمد بن حسین در خطاب بزرگ وار ابن ابی امیر، ان عمر ابن عزینه ان محمد بن مسلم که را نهرد کردیم مرد بسیار است و ایشون خدمت امام صادق نرسیده یا به صورت نامه از حضر سوال جواب کرده یا از شاگرده حضر یه مثل محمد مسلم. زراره و محمد ویموسیم از این ها نرمه آله قلتو در یبدالله علیه السلام اصمه آله حدیث منی که و انقص آله ان كنت تورید و معانیه هو فلا برس این بحثی بوده که از همون قرن کالایشون که از هر یبدالله نرمون کنه و کنه از اوائل قرن دوم، بین مسلمان ها مثل شد در همین کتاب کفای خفیب مثلا این بحثی در کتاب درایت حدیث در نقل حدیث به معنا اونجا نرمونه از ما علمان بردن علمان معروفشون اجازه دادن نقل حدیثونه از دو نفر از تابعی نرمونه اجازه نمیدادن گفتن نرمونه در این حال خاص این بحث مثل بوده این رو محمد مصدر به امام صادق رو عزیز کنه اصم آل حدیثمه به عزید و وعن خوص میشه آل این کنت تورید و معانیهو فلاوه است البته در مردم محنا خصوصی ها که از کارشون بحثی حدیثی است در همون کتاب رو در از حالا من خیلی وارد میشه این دو طارفه یک طارفه دیگری روایاتیست که بر نقل به محنان می کند از خیر این ها در اصطلاحات فعای ما نقل به مضمون هم اضافه شد نقل به مضمون این است که مثلا یه فقیقی به مضمون حدیث فتوا بده مثلا گایی شیخ بیگه و رو بیانده به ای اداره که خب این که محن نبوید تو به اداره که این رو اصطلاحا نقل به مضمون بیاند پس یک نقل به لفظ یک نقل به معنا یک نقل به مضمون نقل به مضمون هیچ خود نداره چون اجتهاد فقیش توش دخالت میکنه چون استنباه به اصطلاح حال خبر حدسیه نه خبر حدسی اون نقل به مضمون اما نقل به معنا طبق روایط امام صادق مانه نداره حالا من چون وقت آخر تونچون رو بخونم این حتی کتابیست از مردوم سلم که بود در اجازهات خودش بله ایشون به اسناد نری و ابی جعفر محمد بن علی بن بابری محمد بن علی وابی همین صدور معروفه فی کتاب لدنی و منیت علم اخیرا اشاره کردیم کتاب پیدا موجود نیست خان عبی برای آشنا با کتاب منیت علم ما احتمال می دیدیم این علم گزینشی نبوده شیخ علی راتوودی کتاب فقی گزینشیه ان محمد ابن الحسن ان احمد بن محمد بن الحسن بن زهردي علم خرابی داره که ولی باشه ان محمد بن الحسن ابن احمد این احمد غلطه. بن احمد. این محمد ابن حسن ابن احمد ابن الولیبه. ان محمد اون بن دومی به ان ان محمد بن الحسن اینجا مراد صفار و انان انان مراد انان کلینی زاره که دایی مرمون کلینی بود ان خلافه درمات ان ابن مختار سخیدی وازمی شد فیز ابن مختار او غیرهی رفعه لها رو خواهی مشکل زیاد داریم هنیست قال غزر عبیردالله اصمه و حدیث من فلعلیگا عبیرده ما سمعتو فقال ادار اصد, اصد تصول به من اون معنای دقیق شده اراده بکنه فلابه است این نماهو به منظر تااله و حلومه وقت عضواجی است نسته هم میگن الفاظ مختلف باز اون حدیث اول خوب بود من دو داره بودشت به ایک این تموم بکنم وقت رو بله حد این, حد این حدیث سه که نقل المحنا اجازه میده کماره 97 نقشه به ها در اسناد که حالا بخشن نیست یعنی اون هم برمیده به برقی ظاهرم من محمد ابن علی رفعونی محمد ابن علی, محمد ابن علی کوفی عبو سمینه است ما در اصولا در میان شیعه, شیعه باشه، از ایشون مشروع به کذ نظرم هشتر رو کذابی نظرش تر بیکنم قال قال ابو عبدالله علیه السلام ایا کن و کذ باید مخترح خیلی واضح خیلی شاختار قول ما قیل را که گل محترم قاله امیو کرد کرده از کسی به تو مدلی یه فتت خوکم و تردیه او, او انلری یه هم دسته که هم ظاهرن اونجا دیگه و سریم لبیو حدیث کرد ظاهرن این مرادش همون باشه که اسمش تبدیلیسه این من حدیث کردم مثلا دوست شما نهارو میکنه از پدرش شما واسطه ببینداده از پدرش بگیم پدر دوستان حضرت یکی دوو شاخ داره کلر گزنه انکساری باشه تو بعد اونو بگیری اگر مراد این باشه اگر مراد این شیخ نازل مدرس نیست باشه و اهلش باشه مثلا این چه بحث حدیثی توذیه در حال امام می‌فرواله هر کسی که حدیث شما همون رو اشنای نه اینکه اون فرزه بعدی یه نسخه اینجوریه یه نسخه نه کسی دیگری که نگفته اینجوری هم هست نه باید مولا همون نسخه افراد براز باشه پس بنابراین این هم تقریبا شبیه همون یای که حدیث مستقل قرار میوشین نزمون دیگه نداری کسی اینا هم احادیتی بود که نقل المحنا رو اجازه دادن درست هم هست فتوای اصحام بر نقل المحنا هست اصحاب ها بسا اصحام ها جزایی نقل هست